بسم الله الرحمن الرحیم صحبت این جلسه زارانی اسفیسیار کلی و عام داره و آن اسلام که اسلام اصولاً چیست؟ او به نظر میسته که قرنهاست که هزاران عالم و فیلسف و فرقی و متقلم و عارف و مفسر دارن میگن که اسلام چیست خب منظر نیسته که هرچی که گفتن نهایتا مونده به این شده که این شاهد باشیم ببینیم که اسلام نیست هم. پس همین مسئله به ما نشان میده که پس ما نسانستیم بفهمیم که اسلام چیست اگر اسلام نام تعریف اصولیش که راه و روش سلامت و عزت و آسایش هست و هم از اونجا که فترتن و ذاتن در جسدوی سلامت و عزت و آسایش هست بس بایستی اوتوماکیت مان بایستی ترفتار اسلام باشه حالانکه که ضد اسلام شده بایست اشکالی در فهم و برداشت و تعریف این مزله بوده سوای طبی کافرانی و که بشر کافر طبعا خسم خودشه یعنی خصم سلامت خودشه این صورتی از قضیه است و دیگه امروزه من داری که ابتدایترین تعریف از اسلام هم مخدوش شده امروزه الفوای مسلمانی زیر سوال رفته رضا ما هموانی مسلمان رو موظف دیدیم که برای خودمون در یک ذکر دیگری درباره اسلام داشته باشیم بیاد بیاریم که اسلام چه بوده است و را بوده چه باشه خب بنابه آنچه که در قرآن کریم ما درک میکنیم متوجه میشیم که اصولا دین همان اسلام بوده است ذاتا که در طول تاریخ در جریان نبوتهای گوناگون درجات این اسلام و اسلامیت ظهور و بروز داشته و کامل و کاملتر شده و آنچه که قرآن به ما میگه اینه که خستینبانی اسلام کامل و اسلام خادث ابراهیم خلید الله بوده قرآن مطلب واضح و ما باقی هم شما همه تکمیل کننده و احیاغر دین ابراهیم بودن ابراهیم حنیف همونطور که به پیانبار اسلام هم گفته میشه که پیامبر مردم بگو که من هیچ دین جدیدی نیواردم بلکه من پیروه دین حنیف ابراهیم هستم اون قسطی مسلمان بود و من همون مادرم همان رو احیا کنم و من همون مادرمی که مسلمان باشم خب مطلب هم از درقه کلامی و منطقی در قرآن واضح شد خب باز بریم در جنبه همون سر واژه و لغت اسلام از بیشه سلام هست سلام از اسما ازادات خداست سلام به مفهوم سلامتیست سلامتی به مفهوم عزت و آرامش و خوشنودیست بلا همینه که قایت اسلام به مقام رزوان و رضا میشه که همان خوشنودیست این خوشنودی از خدا یعنی خوشنودی از خود یعنی خوشنودی از بودن و زنده بودن اسلام با راه خوشنودی رو به انسان نشون بده تا انسان بر اعمالی که انجام میده گام به گام به سوی و رضا و رضوان الهی که هم اسلام مفهوم آمونش در جنبه لغت یکیش مفهوم سلام و سلامتی است، مفهوم دیگرش مفهوم تسلیم بودنه که اونم مشتق از سلامه تسلیم بودن چه چی چیزی خب واژه در تعریف تسلیم امر الهی بودنه پس اینطور میشه گفتش که راه سلامتی و عزت و خوشنودی در حیات همون راه تسلیم امر خدا بودنه تسلیم اقام دینی که به انبیاء خداونداده داده تا به بشار اله کنه این راه سلامتی و رسیدن به خوشنودی است تسلیم امر خدا بودن خب این تسلیم بودن طبعات انواع و درجات و مقامات گوناگونه دین و درجات سلامتی و عزت و درجات انسانیت و تکامل و خداشناسی است که نخستینبانی کاملش هم عزت ابراهیم بوده که او اسلام کامل رو اجرا کرد و لذار به رزوان الهی رسید و در کمال این واقعه مقامی نخداد که اسمش امامت امامت به منای اسلام کامل حرکت اسلام کامل را انجام داد به امامت میرسه که همون مقام رزوان خدا هاست یعنی مقام رضای ازایی یعنی از وجود و از حیات هستی از خودش و از خدا و از کل جان و وجود خودش لازی و خوشنود و باید که عاشق بر هستی میشه خب حالا میتونیم به انواع و درجات و طبعات این اسلام سلامتی و تسلیم بودن بپردازیم. و خوب است که از خود حضرت ابراهیم به عنوان نقصی مسلمان کامل شروع کنیم تا به خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیه آله برسیم که او این کماز رو نیز ختم کرد و امامت به صورت تنها جریان دین از این ختم نبوت جایی شد و لذا از ظهور اسلام و محمدی به این طرف آنچه که به عنوان دین و خود اسلام هست در قلم روح امامت هست و نه نبوت و بقید از امامت میشه مسلمان بود و دینداری کرد و به مقام تسلیم و رضا و سلامت نفس رسید و همینی که در معرفت اسلامی در دین اسلام خبی خب امام کافر نامیتو میشه یعنی کسی که امام نداره نمیتونه تسلیم امروی پروردگار باشه رضا نمیتونه به سلامت نفس برسه در در به سلامتی درار میدیر یک جنبنده کلی از کل معنای اسلام از جنبه تاریخیش خب اگر از حضرت یه برایی کنیم تا واقع بس بگیم که حضرت ابراهیم چه کرد که بانی اسلام کامل شد این میتونه یک سوال باشه حالا سوالای دیگری اگر داره میتونیم همه رو جهان تر کنیم بریزیم وسط تا این رو به صورت موضوعی و فراکنده پاسخ نیدیم بلکه این سوالها رو خود تبدیل یک سوال واحدی بکنیم که در این صحبت کوتاه میتونیم بتونیم شاید شاید به یک معنا و گوهره نوینی از اسلام و یک حلقت جابدانتایی از اسلام و دین خدا دارید. بید می شما ساید دارید به دارید بساید. خیلی ممنونم از توضیحات شما البته همینطور که خودتون گفتیم بحث در باره اسلام بحثی بسیار بسیار متنظر خب اسلام از بابتی راه سلامتی است و از بابت دیگه همون جریانی در واقع تسلیم شدنی و شر در قبال امر خداست و آغاز کننده این راه حتی قد با عنوان یا تحت عنوان اسلام میشه بست حضرت ابراهیم بوده البته من فکر بود که ما اینجا حضرت ابراهیم رو نمیتونیم آوازگر بگیم باید بگیم که آنچه که با عنوان دین هست از همون حضرت آدم این نبوده یعنی اصلا دین یعنی همین دین با عنوان یک راه در واقع در دنیا بشری راه سلامتی و عزت و از بابت دیگه راه رسیدن به خداست که در واقع این خدا با عنوان معنا در مادیت بشر رضایت رو حاصل میکنه. تمام انبیا فقط همین معمولیت رو داشتن که با آوردن های خودشون احکام سلامتی و عزت و آرامش رو به انسان بیاموزنده بشر بیاموزند و در این حال بشر رو به خدا نزدیک بکنه اما مورد حضرت ابراهیم همطور که خودتون هم صحبت کردید قبلا حضرت ابراهیم سوال کردید که حضرت اون چه کار کردید ببینید به نظر میرسه که حدقل از بابت اعمالی که ما بخوایم نگاه بکنیم خب ایشون پدر ایمان نامیده شده حدقل اون که در خاطر من هست در سیر زندگی حضرت ابراهیم یکی از بزرگترین اعمال ایشون رها کردن همسر و فرزندش در بیابانی بود که مرگ اونها ختمی بود و در واقع حضرت ابراهیم این که حاجر و اسماعیل رو در اون بیابان رخای کرد اونها رو به خدا سپرد و این عمل رو واقعا انجام داد خب ما همه آدمها در حداقل بیان آمیانشون همیشه در خداحافظی که میکنند، همدیگه رو به خدا می سپارن. ولی هیچ وقت در ذهن و احساس خودشون چنین نمی کنند و تمام نگرانی های بشر از هر بابت اینه که بشر هیچ وقت نتونسته به خدا اعتماد بکنه و به همین دلیل خودش رو وارد جریان زندگی به عنوان فائل کرده به عنوان اینکه حالا برای اینکه خدا نمی تونه حافظ خوبی باشه پس باید بشر به فکر خودش می بود و با علم و فنون و تکنولوژی و تمام محاسباتی که در ذهنش هست این حفاظت و این بیمه رو برای خودش ایجاد می‌کرد. خب الان که ما در دوران آخر و زمان هستیم بشر تر از همیشه بر جای مونده. با توجه به اینکه بیش از همه دورانها خودش در تمامی جوانب زندگیش بیمه کرده پس بشر امروز وقتی که به حضرت ابراهیم فکر میکنه بیشتر عظمت کار حضرت ابراهیم رو در میابه چون الان میدونه که حتی نمیتونه یکی از اشیای خونش رو هم به امید خدا رها کنه یعنی انقدر اصلا اعتمادش رو به خدا از دست داده این همه اشیای خونش هم حتی بیمه باشه همین میخواستم بیگم اتوان الان همه خونشون رو بیمه میکنن ماشینش رو بیمه میکنن مبلشون رو بیمه میکنن فرش رو بیمه میکنن ازا. یعنی سوای جانهای خودشون هیچ چیز واقعا به خدا نمیشه سپرده بشه و وقتی ما با همچین بشری مواجه میشیم که همه الان همین هستن بهتر میتونیم بفهمیم که واقعا حضرت ابراهیم چه ایمانی داشت که همسرش رو و تنها فرزندش رو در اون زمان در بیابانی رها کرد و فکر میکنم پونزه سال بعد بود که دو مرتبه برگشت بیابانی که هیچی وجود نداشت و مطمئنا اگر با عقل و ذهنیت محاسب و بشر بود مرگ اونها حسنی بود ولی خب اونا نموردن و ابراهیم مطمئن بود که اونها نمی برای همین پونزه سال تونست صبر بکنه و بعد بیاد ببینه که اونها در چه های خب عمل دیگه که حضرت ابراهیم انجام داد که بار دیگر در واقع میشه گفت ایمان خودش رو به خداوند اثبات کرد در کاری بزرگتر، این بود که خواست سر تنها فرزند خودش رو. در واقع تنها پسر خودش رو از بدن جدا کنه به امر خدا مند. خب، وقتی آدم خودش رو در جای حضرت ابراهیم میذاره، واقعا نمیتونه احساس میکنه این واقعا افسانه است. شما تصورش رو بکنید که زن و بچه خودتون رو در بیابانی رها کردید و چنان یقین داشتید که اونها محفوظ میمونند که بعد پونزده سال بعد که میایید اونها رو برای اولین بار بعد از اون رها شده دیدار کنید برمیگردید گردید تا سر فرزندتون رو ببرید حتی تصورش هم بسیار مشکل این که ابراهیم چه احساسی داشت و با خود چه کرد که تونست اون رو برگردن اسماعیل قرار بده و تلاش کنه که سر فرزندش رو جدا بکنه واقعا از عظمت این کار بالاست که حتی لحظه ای هم بشر امروز نمیتونه خودش رو جای عزت ابراهیم بذاره خب به همین دلیل بود که عزت ابراهیم پدر ایمان لقب گرفت این خودش سوای تمام کارهای دیگر حضرت ابراهیم در طول زندگیش همین دو فقره فکر کنم کفایت میکنه تا ما بتونیم راه تسلیم بودن رو از حضرت ابراهیم بیانوزیم ایشون به امر حق تسلیم بود تسلیم بودن به امر حق نه از بابت خوشگذرومی و لذت طلبی. از بابت در واقع جدا کردن محبوب ترین کسان خودش از خودش بله. وقتی ما صحبت از تسلیم بودن می کنیم اینجاست که انسان ها به آزمون گذاشته می شد که آیا تسلیم هستن یا نه زمانی که کسی تسلیم عمر خدا تا عزیزترین در واقع کسان خودش رو رحاب کنه اینجاست که نشون داده میشه که فرد چقدر به خدا اعتماد داره. اینکه خداوند امر که آقا بخورید و بیا شامید یا این کارو بکنید و طرف آقا فقط خب من که تسلیم هستم، اینکه تسلیم بودن نیست که. در چنین جریانی است که آدم میتونه ایمان خودش رو بیازمایی که واقعا چقدر ایمان داره. و خب حضرت ابراهیم هر دو بار سر بلند از راستش خب ببینیم که چرا خدا این کارو کرد؟ من از شما میخوام که این سال من پاسخ بدین خب چرا چنین امتحاناتی برای حضرت ابراهیم گذاشته شد تصور اینکه خدا میخواست اون رو زجر بده آیا واقعا اینطور بود آیا خدا واقعا راه دیگهی نداشت برای امتحان آیا امتحانات خدا اینقدر سخته که آدم باید عزیزترین کسانش رو در واقع به مرگ بسپاره و حتی خودش اونها رو بکشه و این توریست که ایمان آزمایش میشه راه دیگه وجود نداره و این چه معنایی داشت و بازگشت اسماعیل از جانب خدا به ابراهیم چه معنایی داشت و چه پاسخی بود از جانب خدا بحث بسیار است. بلی من با این سوال این بحث رو شروع میکنم خیلی معمینم مرسی خب ببینید به نظر من ما اگر ابراهیم رو به فهمیم تمام تمام و دین رو فهمیدیم مخصود خلقت انسان رو فهمیدیم و نهایتاً اسلام رو و دین محمد رو فهمیدیم و به نظر من نهایتاً فهمیدیم که اصلاً امام کهید و اصلاً دین یعنی چی لفت و امامت به مفهوم کمال دین از کجا داره <تصفح> ببینید که بعد از چار پنج هزار سال آن خانهی که تاجر درشتی است و دو مرتبه تجدید بنا شد و شد خانه خدا دو مرتبه قبله شده و هر میلیون ها نفر حالا دانسته یا ندانسته بر اونجا میچنخند خودش اللازه ظاهری هم حال هر آقلی رو تحریک میکنه که بیندشه این یعنی چه؟ چه معنی میداره خانه, خانه خودم بنده بند خانه خودم ما میدونیم که در قرآن کریم یک از اسمایی که برای خانه خدا بهش شده علاوه بر بیت الله الحرام بیت الله خانه مردم هم نامیده شده خانه ناس خیلی جالبه باز به نظر میسی که خدای خانه خدا اما خانه مردم هم هست خب این دو تا اسم خیلی متناقضیه خانه خانه خانه مخلوق بوده که خانه خانه شده خب ما میدونیم دیگه خانه هاجر و ابراهیم بوده و بعد اون خانه به دست ابراهیم و اسماعی ساخته شد با سنگ و گل و خشت و شد خانه خدا خب خود کلمه خانه خدا واقعا ما فکر نمیکنیم اصلا یعنی چه خانه خدا آیا خدا در اونجا زیست میکنه خوابیده خب یعنی چی خدا تو اون خانه چه میکنه؟ خدا خدا مگه برعش نیست آه. خب آیا اونجا شش همون هست؟ خب اینها رو به دخره ماقا جواب داشته باشیم یا همچناان دوست داریم که ما این معارف دینی و این واقعیت های دینی رو همچنان می در موردش فکر نکنیم و این رو به افسانه ها حواله بدیم یا دکتر به شعر و شاعلی بخوایم برگزار کنیم و نخواهیم بفهمیم درست به همین دلیلی که چون با به این چیزدانندیم متفکرده تفکر کنیمیم دی ماه. برباد میره یا اگرم هست این نفاق و خرافه و افثان و میشه تو ما تفکر نمی کنیم خداوند میگه تفکر کنیم خب اگر خون تفکر کنیم چرا خانه خدا اما خانه هاجر خانه خدا شده اصلا خدا در اون خانه چه میکنه اما میدونیم در اون خانه که خدا نیست شایدم هست این یه نیچه آیا ما باستیز واقع و تکسیف خودمون رو یه بار روشن کنیم که آیا دین و باور دینی و ایمانی دینی مکتب اصالت محرفته یا مکتب اصالت هماغته به نظر میسته که بخش غالبه بر مذاهب در طول تاریخ مذاهب عاملی که به خرافه و بندفاق و نایتن به کفر آشکار انجام میده این بوده که مکتب اصالت هماقت بوده و به نظر میریسته که بشر هرچه که کم مؤمن بودن و احمق بودن و در طی هزاران سال مترادف پیدا شده بخشی از روحانیت منافق مذاهب گوناگون در تاریخ هم در این عالم تقصیر اساسی رو داشتند و به مردم چنین حالی کردند که برای خود و مؤمن بودن بهتر اصلا نفهمند، نفهمیدن همان ایمان است. این هم یک واقعیت بسیار ترسی که مهد نفاق و نهایتا کفر آشکاریه که امروزه همه بهش رسیدیم و دوست به همین دلیل که به مثال نگاه کنید در همه مذایب وجود داریم نماز عبادت و نیایش هایی که کلام انسان با خدا هست هرچی این کلام پیچیده باشه نامحفوم تر باشه و فهمیده نشه به نظر نیسته که ثوابش بیشتره برای همینه که تا قرنها معنای کلام الله اصلا در چشم بسیاری از روحانیت منافق و جاهل مذاهب کفر حساب می شده. حتی در بخشی از روحانیت متاسفانه اسلامی هم اصلا خاندن قرآن و ترجمه قرآن اصلا حرام و کفر حساب می شده ترجمه قرآن مثلا به زبان فارسی حتی در آدم شیه این اباخرها در تهی چند باب شده از حرام بودن در آمده یعنی نشون می اینها تا قرنها و ترتیه هزارها حرام بوده از خدا خدافهمی خداشناسی حرام حساب می شده خب اگر انسان فهم شه و فهمم تماما از دین هست و از در واقع می گفت اصولا شعور تخته بوده تعطیل بوده شعور دینی شعور انسانی معرفت روحی و روحانی انگار حرام بوده برا همین فیلم عرفا در سور تاریخ همیشه از به اینجننا از روحانیت مطی به کف بودن چرا برای اینکه اینا سعی میکردن دین رو مفقوم کنند و به معرفت بکشن لذا کافر و زندگی و ملحد محسوب می و خیلی از اینها هم خونشون در این راه ریخته شد و شاید شدن. این دردیه کهیه امروزه هم هست نه که این روززه کمتری توق امروزه خیلی بیشتر قول معروف یک حکایتی خیلی وال امروز ماستیه گفته میشه که روزی که دای خدایی کرد در دوران یه شاهی بود اون شاه شنید گفت اون کس رو بردارید بیارید اینها تا ازش تغییر کنید که دای خدایی کرده اون وزیر گفتش که ادعایت تغییر کنیم ازش گفت بله برای اینکه مردم مدت‌هاست که دای خدایی نما تسین که دای خدایی رو پیغمبري بکنه، بهران که اصلا خدا و فراموش شده از فراموش شده، دوخا که کسی حتی ادعای دا خدایی و پیغمبري هم نمی‌کنه. واسه حال امروز همسواد. یا بقول میشه و زبان دیگه میگه که امروز ما رو در میدان شراتیش نمیزنند به این دلیل نیست که بشری امروز خیلی فکور و اخردمند شده و خیلی انسان‌تر شده، به این مناس که اصلا فکر و معرفت و انسانیت فراموش شده. این واقعیت این دلیل آزاد فکری نیست برگردیم به صحبت شما این دکتر رو خواستم تذکر بدم تا اهمیت این بحث همیختر و جدیسر بشه باید. ابراهیم خدا قرآن کریم داریم که در خواب دید در خواب دید که بایستی فرزند دیرسمایی رو زب کنه ببین صورتیه که وحی یا رویانی صادقه یا جبریلی ملکی اون صورت باشه نبود و همین بود ابرایم بشاره اون تردیدی شد که اصلا چنین حد از تردید و شک من مطمئنم که در کل تاریخ بشر تا قبل از اگز رخن نداده بود و بعد از به لنظرت داد در خواب دید که باز فرزن رزب کنه برای به شب افتاد که آیا این القا خدا بوده یا الغاای ابلیس بوده چرا که در قرآن داریم که ابلیس و شااطین هم به انسان ها وی میکنند خدا خداوامری میکنن. هم ور میکنن. همین خیلی از این القاعات شیطانی و ابلیسی رو خیلی واقع فکر میکنن این واقعا خداست و ادعای پیامبری میکنن. امروزه هم خب تاثیر مخصوصا تاثیر داروهای مخدر خیلی ازصا این القاعات ابلیسی میشن که اسم میکنن یه پیام از بیرون بهشون رسید و اساس میکنن که بهشون داره ورای میشه در حالی که این دیوانه و شیطان زده پیش خواسته کسی اندل حق میزنه از اینا محضاران نفر رو توانی منظرکت خودمون داریم این مسال ها تا ابراهیم محسوس تر بشه مفهوم تر بشه خب در تمدن قرب یکی از کسانی که در قیون اخیز در تمدن جدید این بحث رو انگوش خوزاشت روش و یک بار دیگر به قلم روی که دشوند عارف دانمارکی به اسم کرتگارد بود سران کرتگارد بود که یک کتاب در همین مورد داره در از کل فلسفه ای او بر این اساس حکمت ابراهیمی بنا شده این بار دیگر مدره ابراهیم رو به فکر کشان و دعوت وقت ترک کنید خب بنابراین می‌بینیم که ابراهیم دوچار عظیمترین امتحانات بشری شد در نفس اسماعیل ما میدونیم که یک فرزند عادی نبود ابراهیم وقتی برای 14 سال یا 15 سال دو مرتبه به عمر خدا رفت تا به همسر و فرزندش در سرای برهوت عربستان که بوی آدمیزاد نمی اومد و اونها اونجا زیست به تنهایی طرز بزنه دید که اه این فرزندش اسماعیل که یک جوان نوجوان باذقی هست دید که یک فرزنداتی نیست تمام نشانه های فرزانگی حکمت و خرد الهی و حکمت الهی رو در او دید و دید که اصلا حتی نوری از توحید که در این فرزندش اسماعیل میدرخشه هزار بار, بار از خودش هم تا و بعد گفت خب این فرزند رو باستی زب کنی سرش هم ببریم تازمان مدونه بود که خداست القا این روی را بیسه بس فرزند عادی هم نبود فرزندی که 14 سال در دیدارش نه زده بود حالا رفته بود دیدی دیده بود که این فرزند فرزند عادی نیست طبیعتا عاشق فرزندش رو بود حالا این باستی سر اشق خودش رو دین خدا خیلی سخته مثل که شما فرمودید آیا راهی راحتر از این نبود؟ ببینید وقتی ما این سؤال رو میکنیم پاسی از خودمون سوال کنیم که اصلا انسان یعنی چی انسان برای چه خلق شده؟ هلالی معرفی دسته دینی ما میدونیم که خداوند انسان رو خلق کرد تا جانشین خودش تا خلیفه خودش تا عین خودش تا به مقام خودش برسونه مقام خدایی مقام مطلق. استقلال مطلق جاودانیگی مطلق و بی مطلق و بی مطلق و خودتفایی مطلق خب پس انسان خلقه تا این کاره بشه خب پس واسی زمن بکشه واسی زمن بکشه و انسان برای اینکه که بتونه خدا بشه واسی به همچنون خدایی ایمان داشته باشه و همچنون خدایی رو بشناسه و تجربه کنه بفهمه که همچین موجودی هست و با اون رابطه برقرار کنه تا از این صفات برخوردار بشه بنابراین دیگر باصی گفتش که ابراهیم بنیانگذار کامل این اندیشه است اندیشه خدا کافی است اگر اون نخستین مسلمان بود در قرآن آمده برای اینکه اون خدا کافی رو محقق کرد در عمل یا خدا کافی است برای بودن من انسان من اگر خدا رو داشته باشم کافی است کافی هستم یعنی خود کفا میشم یعنی این خدا میشم پس اسلام در واقع میشه گفت راه رسیدن به مقام خدا کافی است جدیه میشه این, این کمال دینه یعنی کمال انسان. انسان کامل کسیه که به مقام خدا کافی است در وجود خودش رسیده و به این امر یقین کامل پیدا کرده که خدا کافی است در قرآن داریم که امامان به مقام ابرار نمی رسیدن که از محبوب ترین بگذارید دل بکنید ببین محبوبترین از خوب اومده انی از نیاز قلب اومده در ابراهیم از محبوب ترین چیز که اسماعیل بود قرار بود دل بکنید این دل بکنم ده حد اینکه کنه نبود و این ویل کرده بود از زن دو همسرشون ما میدونیم که با عنوان یک بشر ابراهیم عاشق هاجر بود اگر به خدا بود پس لطیف ترین و عادی ترین دل‌های را داشت پس اشکو با هاجر عادی ترین ممکنه یک مرد بیخیال بود چون چنین بود خدا گفته است بیخیال. بول نمی‌توانی اونو نه تو طلاقش بده طلاقو خیلی راده. اما طلاق میده ولی خب دوستش دیگه نیبینم. این از آرتون طلاقم بدتر می‌دونیم. اتوبوگوایی سریزه این تو بور این راحت بود. برو توی بیابون ولش کنم. خدا شما. آه خوب بعد از این رابطه حالانی بسن اسمایل اومد که این دیگه عشقی در ابراهیم رو پدید آورد محبوبیتی حبی که واقعا قابل توصیف نیست این در واقع بشه گفتش که عالی ترین حد عشق یک انسان یک انسان دیگر در رابطه بین ابراهیم و اسمایل پدید آورد و خدا گفت این کمال عشق رو گردن بزن تا به مقام ابرار برسید بار از اسمای خداست بار دو مفهوم داره. یکی مفهوم نیکیست است یکی مفهوم آزادی و بریت مبرا بودن از باره یعنی مطلقا بینیاز بودن و در ذات خود برای خود کافی بودن خود نیکو بودن یعنی کمال نیکو بودن و نیکوکار بودن یعنی رسیدن به این مقام نیکوکاری یعنی رسیدن به خودکفایی این روکار اینسان نیست که دست هم تا خود خودکفایی بی نیازی کام این دست هم تا خدا کافیست عملش چیه؟ اینه که از محبوبتر چیزها چیزهاد بگذاریم خب شما فرمودید که آیا ابراهیم واقعا دل نگنده بود که مجبور شد بعد از 14 سال بره با سر پسرشو ببره ما نمیدانیم ولی عقل ناقص ما میگه شاید اتماعا اینطور بوده اینکه آیا ابراهیم به این یقین نرسیده بود که خدا کافی است و همسرا فرزنش در اون بیابان برمودطبی آب بالا که حتی ما رو عربم زندگی نمیگردن از فرت خشکی مطمئن بود هم نمیمیند خ خب. نمیتونیم خدا میدانه. شاید همه به این یقین نرسیده بود و دست این چهار سال همش فکر میکرد که نکنید بهمیرن خل خب. باللومه به خدا کافیشار نرسیده بود نمیدانهحت میزن این تا بتونیم رو بهطرفهم کنیم از بی نقص معرفات و یککن ایمان خودمون اینجوری حدس می میزنیم تا بتونیم مثلا محسوس کنیم برای خود مفهومتر کنیم. شاید در این شک داشت. طبیع شاید اززاران بار این تجیح پیدا کرد که نکنیم همصر اززندن مردن دیگه. و همه چیز تمما رفت و چه بسا بارها و بارهای ابراهیم شک کرد به خدا و شااهید بارها صبه کف رفت و چه ب ها کافر شد. ما این داستان رو در مورد همه امروز آل قرآن داریم که بارها بر لبه تیغ کفر می رفتند. این واقعیت است. و آنها بروند یا غزالان استانبول داد. همه اندیا. و نباید این هم مثالی برای مورد اندیا میزنیم. با سریعسی به نفس خودمون کنیم. گیاس هم میکنیم قیاس خودش گناهه ولی این قیاس چون شون مقصود در که دین خداست، پس نمیتونه خیلی گناه باشه. قیاس میتونه تا بتونیم خودمون رو بتدرک کنیم و اونها رو بتدرک این شاید چنین بود، حتماً هم چنین بوده اون هم میگه که ای پیانبران بگویید که آقا جان ما هم بشری مثل شما هستیم ما عد آسمان نیم ما فرزند خدا نیستیم، ما خدا نیستیم، ما ملک نیستیم، عین شما هستیم و فقط درست کردیم که خدایی هست و داریم زحمت میکشیم تا به او برسیم ببین؟ خب از اگر ابراهیم هم این بشتری مثل و این اومده که این هست. در مورد خود پیغمبر اسلام آمدیم که بارها در لبه شرک و کفر پیش میرفت خب این چیز طبیعی این تردیدها تردیدها یه قدم رو به دینه همونطور که مثلا سمای فارسی یه روز اومد پیشه بیان گفتش که ای پیغمبر من کافر شدم گفت چی شد؟ گفت من دیروز داشتم تفکر میکرم در مارین خدا یه دفعه در باره وجود خدا شک کردم که او هست یا نیست گفت تا تبدی تو با این واقعه بر قلمرو رو اعراف و معرفت و وارد والد شدی، شده اعصاب اعرافی ببینید پس این شکهایی که اینها دارد در یک جهان دیگر است، انسان در قدم رو شک معرفتی که به یقین میرسه یقین فرزند شک شک معرفتی نه شک وصفصهی وسواسی نفسانی ها وصفازانه. نه شک از روی مکره نه شکی از روی ایمان و اخلاص و عشق به خدا همطور که انسان هر کرا که بیشتر دوست داره بیشتر داره دوچاری شک نسبت به محبوب خودش میشه انسان نسبت به خفران خودش شک شکی نداره مثلا به کسانی که نمی‌شناسه هستن چه شکی داره بیشتر نیست انسان هر کرا که بیشتر و عمیقتر دوست داره بیشتر درباره او به شک می‌رسه و شک هم بیا الهی و اولو نسبت به خدا چه بسا عمیق‌ترین و مدود شکا می با وجود پراندازترین شفافا میتونست باشه همونطور شکی ابراهیمی تا به کمالی یقین رسید و به مقام خدا کافی رسید و اولین امام شد یعنی به مقام خدا کافی رسید یعنی به اسلام کامل رسید تمام از اسماء خداوند یعنی خلیفه خدا شد یعنی احد و صمد و سرمت شد بنابراین از این لازم راه راه آزادی هم هست خودکفایی این آزادی از راه دین راه آزادی است آزادی روح از اسارت جهان بیرون خودکفایی مفهوم واقعی آزادی روح خودکفایی است و راهش دین عملش گام به گام از محبوبیت ها و مطلوبیت های نفسانی خود گذشتن که کامسته این حدش واقعا از عشق خود گذشتنه و مقال ملوف پا روی دل خود نهادنه این کمال جهاد دینی و جهاد عرفانی هست برای رسیدن به کمال آزادی آزادی همی استقلال استقلال همون سمندیته راهیش راهیه که ابراهیم این راه رو به کمال رسوند و دین محمد هم ایای دگر باره دین ابراهیم بود لذا همان خانه اقراهیم رو به عمل خدا قبله قرار داد ببین اول و آخری دیمه بحث شد لذا نبوت کامل شد دور کامل زد و لذا نبوت ختم شد خب از یک لحاظ دیگه ما میتونیم این دوری تغییر کنیم که خدا انسان رفعی تا خلیفه قدش کنه خدا میدیم قبلترین قبلها سابقترین موجوداتی بدون که سابقه ای داشته باشه یعنی ازلیت بی عزلی. و عبدیت بی پایانه عزبیت بی آغاز یعنی نه علت تاری نه معلول نه پستاری نپیش. پیش و اقلیمیت این همون بی نیازی مطلقه و همین دلیله لم یلد یعنی نزاده پس انسان در راهی که کام داره به سوی او داره به سمت نزاد میره تا خودش هم بی علت و معلول بی پس و پیش بشه یعنی بی نجات بشه و همینه که نجات پرستی درست در نقطه مقابل خدا پرستی و دین و ایمان هست نجات و نزاد رو در روی همدیگه هستن نجات پرستی اینه نفس پرستی که بسرت بچه پرستی و همسر پرستی و بابنان پرستی و خیشقون پرستی و نجات و قبیل و وشیر پرستی آشکار میشه همه اینا نفس پرستیه ده. و در واقع از کفتش که کفر در یک کلام یعنی نجات پرستی که دو رو داره یکی به فصل یکی به پیش یکی گذشته پرستی، آبا عجداد پرستی یکی هم فرزند پرستی و آتی پرستی و آرمان پرستی های زمینی و دنیوی خوب و برای رسیدن به خدا و خدا کافی است یعنی برای رسیدن به اسلام و سلامت کامل و تسلیم خدا شدن تا عین خدا شدن بایستی بی‌نژاد شد بایستی گردن نژاد رو زد از ابراهیم به این طرف تمام انبیای اومدان به حضور خداوند از ما نیز همچنان تکرار و احیاء و شرح و بست همین واقعه ابراهیم بوده در واقع میشه گفت دین موسی هم اسلام بود بعد اسلام ابراهیمی داریم اسلام موسیبی داریم اسلام ایسایی داریم و بعد اسلام محمدی داریم خب اینا درجات و ظهور بروز اسلام در بره مختلف تاریخ و روی زمین هستش در واقع خوب، کارخانه اصلی نجات و نجات همسرپرستی است در مورد زمین ست مقرم در مدر شوهر و نفس پرستی که نفس پرستی کارخانه اصلی نجاد نجات پرستی. خب هرچه که عشق بهم بیشتر باشه نفستی شدی تر نیستی. آه ببین، بعد ما با فهم ابراهیم برویم. چه کرد؟ آباد در راه رو بود داریم و بگید به دوباره من رو خواست کردم بسیار. به خدا. ببینید به امر خدا و بر علیه نفس خود. ولی این بوزه کم نیستم بدانم در مادرهایی که سر با خودشون خودشان از فرت فساد و نفس پرستی. بچه ها خودشونو به قتل میویسوند کم میویسوند دیگه عدی ترینش قتل قتل کردنه کودک در رحمه سخت جمع کردنه یا با داروها اینها رو کشتنه این روزه اتا بچه های به دنیا میان هم ما میدونیم که قتل بچه ها و دست والده روزی هست که در این روزنامه ها گذارش نشه یه تا 10 سبت های کشم نمیرویسن ن از شدت شهواتی اون، از شدت عشقود به عمل خدا نه به عملا نفس خود، نه عملا نفس خود. پس همه دارن تلاش میکنن. بعضی میگن اون کارای برایمیه لزوما. آقا، ببین بعضی به ظاهر فرم نباستی که ظهورت کنه. تا دشوار خود فردی بیناشیم. طرف برای اینکه میخواد روح امسال خودشو قابض کنه، برده خودش کنه، چون معرف نمیشه، ازش انتقام میگیره، اون تلاش میکنه چه بسپارد میذاره. یا تو بچه خودشو. چون میخواد روح بچه خودشو بب. به بلعه و بچه خودش لایم لکه نفس خودش بکنه و موفق نمیشه ازا بچهش رو آق میکنه تو بسه بچهش رو میکنه از خونه میکنه بیرون چه بسه برون به قتل میرسونه اینه در شد نفس پلستیست است در سه لوران ها همین کافران ابراهیم رو مسخره کردن گفتن دیبونه شده پسر خودش رو خواسته بگوشه چه دینیه هایی که تباقیم دین خدا رو مسخره و انبیاء رو به سخه گرفتن و گفتن ما دیوانه بودن اینا خود حالا از شبابات خودشون دارن خودشون رو بر سر خودشون میسکنن ببین اگه به فرمالیسم بخوایم منطبق بشیم میتونیم اشد کفر و سقاوت رو بیاریم بگیم نشد دین و نمیدونم بریت و, و استقلات ببین برای چه این کار میشده به امر خدا این کارو میکردن عباسون واس باشه نه سر یعوث بازی بلکه بر علی یعوث بر علی نفس برای همینه انسان وقتی ازدواج میکنه تازه نظرات نجات پرستیش قوت میکنه ما میدونیم در دوران دار قبل ازدواج اصلا نجات, نجات پرستی مثلا نیست ببین پند پر نجات پرستی پرستش عواجها رو گذاشته و این پرستش پر زندان ها از ازدواج برمیخیده از همسر پرستی که این نفس پرستی ما یادمون باشه پس هرچی که این عشق رابطی زناشویی شدیدتر باشه و حادتر باشه این خطر نفس پرستی و نژاد پرستی و کفر بیشتره پس ما اینو میگیم که خدا نمیگه چه کاری کرد و این زف واقعا به با قول قرآن زف عظیم بود کار او بزرگترین و کبیرترین کاری بود که بشر در تاریخ بالا برای اولین بار انجام داد بنابراین چه وقتی که ایمان میارید ایمانی یعنی ایمانی به خدا کمال ایمانی به خدا نیچی یعنی بسیدن به این مقام که خدا کافی است خدا کافی است در عمل کافی در همه امور سرم بچهش باشت حتی یک کلو گشتی نون هم واسهشون خدا کافیست. رزقشون رو میده ما این سیر نجات و نجات برندازی رو از سیر تکامل ها سیر زندگی تماما سیر نورد و علیه نجاد خودشون بوده این اسلام هم بوده یه کلامی از امام سجاد داریم در صحیفه سجادیه امام سجاد به محمدی رو وحث میکنه این تیکه رو من داشت گرد و میخونم می فرمات که محمد خاتم نبی این رو معرفی میکنه سالتشو می که در دعوت به دین تو خداوند در واقع دار سخن میگه میپردگار و محمد در دعوت به دین تو با خویشاوندان خود آشکارا خصومت ورزید و برای خوشنودی تو با خاندان خیش به پیکار برخواست تا دین تو را زنده دارد پیوند از خیشان و عواطف ببرید نزدیکان کافر و انکار را از خود دور ساخت و دوران مؤمن و دعوت پذیر را به خود نزدیک نمود در راه تو با بیگانگان دوستی کرد و با نزدیکانش دشمنی می بوده. ببینید تواقع میشه دیر محمد رو که ما مستنجا نیز مرفی کرده دین خدا همین بوده خدا دقیقا همین بوده نبرده با نجاد پرستی که این نفس پرستی و خود پرستی است. نجاد پرستی معلوز خود پرستی و نفس پرستی در قدم روی زندگی زناشمیست این وزده با ما هیچ بخلاده مندره خب ما می‌بینیم که به همین ایلستن اولین نبردی که برای آغاز کرد نبرد برای پدر خودش بود آذر بود تراشه بود یک میمار با مهندسی بود که بود می‌تراشید خب اولین جمع رو با پدر خودش رو آغاز کرد آه بعد بله علیه ببین نجاد از قبل این پدره و بعد حالا از پیش آه ببینید دین هم این بود و همین دلیلی که از دلائلی که اکثر هم بیا و مخصوصا حلول از مها رو خداوند در شرایط یتیمی دیگه می داشته این بوده که مولود آنها ها از نژاد پلستی تا حلولی مسئول باشه و آروده به فساد نژاد و نژاد پلستی که همان کفره نباشه تا بتونن وعی الهی رو قلبن پذیرا بشن حضرت موسا و بلد از ابراهیم بزرگترین بیانبر ای خب ایشان رو ما میدونیم که مادرش در برد به تولدشون رو بر رود نیر انداخت خب ببین خود مادر موسا که یکی از پنج زنان قدیس و بزرگ اهل جنت در سود تاریخه در معارف اسلامی کسی بود که فرزند خانش رو بر آب انداخت و تحبیل خدا داد و گفت خدای تو کافی تو بیشتر حافظی من خب بعد خود موسا رو نگاه کن تدیتیمی بار اومد پدری دید نامادایدی و بعد فرعون و فرعون رو به پدر احساس کرد و نیز اون خواهر فرعون رو به مادر خودش احساس کرد وقتی بزرگ شد تا حدود 30 سالگی در اونجا خودش یه فرعون زاده شد که قرار بود فرعون آینده بشه انقدر دخله بود ولی خب خودشو فرعون زاده میدید و فرعون رو پدر خودش میدید و در اونجا خدا که این کرد که از این پدر ما داری غالیلی که حضر شاه می گذشت و همین طور اونجا رو ادام می داد تا آخر ببینید پس از اساس نبوبتی موسویم بر نبرد برده نجات بوده نجات برندازی در خیشتن بوده نجات در خیشتن آنها نه من برم نجات دیگران رو براندازم نه خیلی نجات خودم باستی براندازم خودم رو پاک کنم از یه دازگی نجات زدائ یعنی تاریخیت و همینه اگر این دوران دوران اشد کفر و دوران حاکمیت فلسفه تاریخ تاریخ برستی معنای دیگری. تاریخیت چیست زمانیت چیست زمان قدم روی چی چیزی قدم روی تباهی و مرگ و نیستیه ها؟ بس پس نجاز و یعنی رهایی از اسارت زمان یعنی رهایی از تباهی و مرگ و نیستی فرسیدن به علم رو به هستی جاوید که خدا ده ببینیم تا دین برای این آماده تا به انسان هستی و انسان را از سالت زمان نجات بده باز می‌رسیم رسیم الان یه مختصری رو ما می ورق بزنیم از ابراهیم دا خاتم حضرت خب ایسا بازی دیم اون که اصلا دیگه نزادزاده بود اصلا پدرم نداشت اصولا نزادزاده بود و شد پیامبره محبت و عشق و عیسار شد و عجیبترین پیانبره خدا و روی زمین شد به در ما میدانیم که سخنی از در انجیل که روزی نشسته بود با هواریونش و با مومنانش یکی از ممنان آمد که گفت هایی چند نفر آمدن دم در میگن ما خوالبرادر مسیح هستیم گفتش که من خوالبرادری ندارم مهمون پرسی کاری اینا کذبا درون میگن یا نه اینا ها فرزندان مریمان من, من, من خواهر براده ای ندارم خواهر برادران من مومنان هستند شمایید من رو داشته باشیم و بعد دیدیم که هم کسی هم که دین مسیرو پیش بود عرص و در واقع واسه وسیح و امام امام دین مسیحی که دینش روزم ننگرداش هیچ کنون از این هماریون نبودن که اکثراً بنی اسرائیل بودن و همشون از نجاز مسیحی سال میشدن مسیح بلکه مریم مجلگی بود که او بنی اسرائیل نبود اسم مریم اسم بنی اسرائیلی است اسم اصلی مریم نبود دالی نام بود مریم را حضرت مسیحی بود نهاد ببین باز دین او را هم یک قیر بنی اسرائیلی برست برد و زنده پیروان داشت مسی، بنی مسیح ما دیدیم که بعد از مسیح مسیح رو خدا کردند دو پسر خدا کردند و این همه فساد و فتنه به اسم دین مسیح و دینش رو تحریف کردند برالله خودش تا بیان روز ببنید. بعد می رسیم به محمد یه مختصری می خواهیم این رو یه ای مروری از چشم نجات زودایی بکنیم این سخن از محسجاد خوندیم پیان ب بزرگترین دشمنانش، اموهاش بودند، اموهاش در پس پرده در رأس رهبری دشمنان محمد و دین امرار داشتند در حالی که بی صد در خونش بلاس بودند، اونقدر بردی بودند و ما دیدیم که نهایتا هم فرزندانش رو و همه ایمامان رو تا خود نژاد محمد کشتند و مؤمنان و مخلصترین مؤمنان دین محمد و پیروان علی اکثراً از غیر عرب بودن یا ایرانی بودن یا آفرقایی بودن اکثراً ایرانی بودن از خول سلمان بگیریم مقداد بلاب نیستم این همه آفرقایی بودن یعنی غیر قریش بودن از مجالی محمد نبودن اما دیگاه کنیم اینجا علی خوب استثنانی بودن از ازار دین محمد و ولایت علی رو هم اساسا ما که عجمه ها یعنی غیر عرب ها برس بردن اون خودشون بودی در نجات پرستی هیچ خیری نیست نه دین در میاد نه شرافت در میاد نه مسلمونی در میاد نه سلامت در میاد درش هیچ چیزی در نمیاد هر کس بخواد دین رو به حساب و نژاد و آب و اجداد بذاره این خودش همون کفره چرا بنی یسائی از توش سعی نمی‌زاره و ما را که این پارسی ترین اقوام می دونن که به اسم ما سفط می‌خواستن نژاد رو بندوزن در اسلام و در برگه مذاهب به میزانی که دین اسلام هم از دویه رگویشه های جاهلیت عربی و قریشی خواست عرب پرستی رو به جای مسلمانی جا کنه به نفاق کشیده شد عرب زدگی کسی که فکر میکنه اسلام عربیته او نمیتونه مسلمون باشه خدا نه عربه دینش هم عرب نیست نزاده دین خدا راه نزاد شدن برای همینه من سعی سرگ میکنن نشون بدن که خدا اصلا ابری بود این گمراهی و نجات پرستی در همه مذاهب بوده از در تمام مذاهبی که گمراه شدن یا منقلیش شدن بر افتادن در منجبه ها نجات پرستی خودشان اون فرقه های که نابوش شدن در چاه نجات پرستی فرقهی و اسمندینی خودشان سقوط پتا کردن این رو با اسی فراموش نکنیم ما که در اسلام هم این واقع نجات پرستی نبرد برای نجات پرستی به شد خودش رسید این واقعه رو دیگه تاریخ اسلام رو مرور بکنیم. ما میبینیم خود خدیجه راکفلر سرای عربستان بود تمام ثروتش رو به اختیار محمد گذاشت و خرج مردمان و مؤمنانی کردند که اکثرشون هم غیر عرب بودن و آخر سری به گشنگی سنگ به شکم میبستن ما میدونیم علی عنوان اولین امام کامل یعنی مسلمان ترینه مریدان و اصحاب پیانبر دیدیم که حتی او برای خودش حرام میدانست که حاصل دستنج خودش رو برای و بچهش بیاره صبح تا رفت کار می‌کرد می کرد در و وقت میاد به و مردم میبخشید و دست خالی می خونه گفت بچه سه سر چی نخوردن گفت نخوردن به خدا مربوطه من که معمولی نیستم که لذاقش ما باشم رزاق ما خداست خدا کافیست. من نه لعظاق خودم نه لعظاقش ما هستم من شواری تو نشودم که به تو بدم این رو یادت باش ببین حسن حسین روزها از فرس زرف و گرسنگی قش می کردن اون نداشتم بخورن مادرش که از فقر و زرف شیر نداشت به اونها بده پیروزی سعدی بی فاطمه، اگر فرزندان اجلاس هستند؟ اگر به سعید زینه بگوییم، اینها از آب درمانند. کامی امام هست که زینه با مامانه، امامات زینه، هیچ کمتر از اصلاً او به سعید نیستیادون باش. اینها از نژاد پاراستی هستند که زینب رو امام نمی دونیم. مارسالاری، گاردن کلو و از اولمانی تالین شو است. ما با سعید پاراستی از ناس پرستی ها می چرا همین فرزندانشون امام هست؟ راه اینکه علی و فاطمه آه اون بخشی که مربوط به رزق بود هیچ کدومشون بچه هاشون رو مایم لک خودشون نمی خودشون رو مالک بچه هاشون نمی دونستن رستاق رو خدا کرده بودن و نگفتن خدا کافیست و خدا خود باید بچه همون رز بده و خواهد داد و میداد. چون خدا رزق میداد، داد و لذا بچه هاشون